بر زمینه سربی صبح سبار خاموشی ایستاده است و یال بلند اسبش در باد پریشان می شود خدایا خدایا سباران نباید ایستاده باشند هنگامی که حادث اختار می شود کنار پرچین سوخته دختر خاموشی ایستاده است و دامن نازکش در باد تکان میخورد خدایا خدایا دختران نباید خاموش بمانند هنگامی که مردان نومید و خسته پیر میشوند